بسم الله الرحمن الرحیم در نواسخ مبتدا و خبر هستیم کانه و اخواتش رو خاندیم اینه و اخواتش رو خوندیم ولی لای نفی جنس که در عمل از اخوات اینه و از اخوات ان حساب می شود چون مثل اینه اسم رو منصوب می کند و خبر را مرفوع اما از آن جایی که شرات خاص خودش رو دارد نحوی ها در بحثی مستقل به آن می و مثل ان لا نف للجنس الجنسی و مثل ان هست لای نفییه جنس، یعنی مرفو و خبر را منصوب میکند کند. عملها خاص عمل ها لیکن لای نفی جنس مخصوص نکرات است یعنی، دو معمولش نكري باشند المتصلة بها وفاصلي بين الله ومعمولنا باشند متصل باشند نحو لا صاحب علم ممقوتون ولا عشرين درهما عندي لا لا ينافي جنس صاحب اسمش منصوبة فتحه علم مضاف إله تون صاحب مصاف بإلم هست ممقوتونهم خبر لا ينافي جنسه مرفو و 20 عشرین هم همه همچنین البته در تمیز هست برای این که لا عمل این رو انجام بدهد سه شرط می هست اولا اینکه که لای نافی جنس باشد دومان که دو معمول نکره باشد سومان که اسم مقدم برخبر باشد اگر لا لای نافی نبود لای نهی بود خب اون موقع مختص فیل ها میشه اگر زائد بود که عملی انجام نمیدهد اگر لای بود که شبیه ویلی ثبوت کند موقع عمله لی سر انجام میده اما اگر دو معمول نکره نبودند در این صورت لا عملی انجام نمیدهد و تکرار لا واجب می شود مانند لا زید الف ولا امر اینجا دیگه نمیگیم زاید اسم لا هست بلکه مبتدا هست چرا چون زید معرفه هست نکره نیست و گفته بود اگر یکی از دو شرط آخری رو نداشته باشد یعنی معمول ها نکره نباشند و خبر قبل از اسم آمده باشد در این دو صورت لا عملی انجام نمیده و واجب است که تکرار شود بس این مثالی که الان گفتیم لا زید در ولا ار اینجا معمول ها معرفه نبودن. نکره نبودند و همچنین شرط دیگر این است که خبر آخر آمده باشد اسم قبل از خبر آمده باشد اگر اومد و خبر قبل از اسم اومد دیگه عملی انجام نمیده و اون موقع لا تکرار میشه مانند لا فیها غولول ولا هم عنها جنفول اینجا فیها خبر هست قولول مبتدا هست خبر قبل از اسم اومده لذا لا عمل انجام نمیده میگیم فیها خبر قول مبتدا دیگه نمیگیم اسم لا و لهم عنها هم یونزفون تکرار شده هم مبتدا یونزفون هم خبر یونزفون که فعل مجهول است با نائب فائلش که واو هست میشند خبر هم انها که هم متعلقه به یونزفون هست این شد از اینجا و کان اسمها غیر مضاف اگر اسم لا غیر مضاف بود یعنی مضاف نبود ولا شبه و غیر شبه مضاف و شبه مضاف هم نبود یعنی چی؟ یعنی مفرد بود پس اگر اسم لا مضاف و شبه مضاف نبود یعنی مفرد بود بونیه علی الفت منظور از مفرد یعنی مضاف و مضاف نباشد بونیه علی الفتحی فی نحوی لا رجل ولا رجاله مبلی برفعته می شود در مفرد و جمع مکسر در اون کلماتی که در حالت نصب فتحه می گرفتند زمانی که مفرد باشند و اسم الله مبلی برفعته میشن مانند لا رجل ولا رجاله پس در مفرد و جمع مکسر زمانی که اسم لا مفرد بود یا جمع مکسر بود و مضاف و شبه مضاف نبود اینجا مبنی بر فتحه میشه و علیه او علالکسری فی نحوی لا, لا مسلماته و علیه و مبنی هست بر آن یعنی بر فتحه اینها به الفتح بر میگرده و علیه و مبنی بر فتح است، یا بر کسر است، در لا مسلماتی، در جمع وانس. پس جمع وانس، اگر اسم لا بود و مفرد بود، یعنی مضافشی به مضاف نبود، مبنی بر کسر میتونه باشد و میتوند مبنی بر فتح باشد. و علیاً فی نحو لا و ولا مسلمینا، و مبنی بر یا میشود. مانند لا رجلین و لا مسلمین در مصنع و در جمع مذکر سالم مصنع اگر اسم لای نفی جنس بود جمع مذکر اگر اسم لای نفی جنس بود و مفرد بود یعنی مضاف شمع مضاف نبود اینجا دیگه مبنی بر یا می شود پس این اسم لای نفی جنس حالت داره یا مضاف هست؟ در این حالات منصوب میشه یا شب است که منصوب میشه یا مفرد هست که مبنی بر علامت نصب میشه یعنی در اون حالات غیر مبنیش اگر علامت نصب بافت بوده اینجا دیگه مبنی بر فت میشه اگر علامت نصبش کسر بوده مبنی بر کسر میشه اگر علامت نصب یا بوده است مبنی بر یا میشود این شد از بحث مؤنث البته شعری رو شاهد آورده است توضیح دهیم لا سابقاتی لا سابقاته با هر دو حرکت آورده چون قبلا توضیح دادیم جمع مانس زمانی که مفرد باشه منظور مضاف به مضاف نباشد و اسم الله باشد میتونه مبری بر باشه و میتونه مبری بر کسره لا سابقات یا لا سابقاتی ولا وا باصله تقل منون لا دستیفای میگه لباس های و لشکر های پر تعداد ارتش های بزرگ نمی توانند تقل منون مانع مرگ, مرگ شوند جلوی مرگ رو بگیرند لدا استیفای آجال زمانی که مرگ برسد زمانی که عجل تمام بشود لا میگیم لا نفی سابقات اسمش هست مبنی بر فتحه میتونیم بگیم و میتونیم بگیم مبنی بر کسره به نیابت از فتحه محلن منصوب ولا لا که دوباره چه هست؟ لا جنس هست جعواء و هرف عطف هست اسم الله هست مبنی بر فتحه محلن منصوب باصلتان صفت جعواء هست پیروی میکنند از محل جووا چون جعوه محلن منصوبه اصلتا هم منصوب هست چون تابع منصوب منصوب هست تقل منون تقی فعل مزاره با فائلش که هیه هست و به سابقات برمیگرده میشند خبر لایه نفی جسم بقیش بهمین صادق این شد از بحث لای نفی جنس اگر لا مسلمینا ترکیبش کنیم لا مسلمینه فی الداری میگیم لا لای نفی جنس مسلماتی یا مسلمینه اسم لای نفی جنس مبنی بریا محلن منصوب فی الداریک همشه خبر. این شد از لا نفی جنس. و في فی نحوي لا حول ولا قوته فتح الاولی. حالا زمانی که لا اومد با اون نکرش تکرار شد. قواعد توزیم ده. میگه برای توست اجازه داری در مثالی ماننده لا حول ولا قوته. در مثالی که لا با نکر تکرار شده باشد حالا این یکی از مثال است فرقی نمی‌کند امثله دیگر هم زمانی که لا به اضافه نکر تکرار شده باشد برای توست فتح الاول که اولی رو فتح دهی مبدی بر فتحش کنی و فی ثانی زمانی که اولی رو فتح دادی دومی رو چه حرکتی میتونی بدی الفتح فتح فتحه والناسب منصوب والرفع مرفوع. أجر أبلي رفع هدادي در دوومي سئراب جائزه فتح ناسب رفع ما ند اللاحوله أبلي روا نكره أبلي روا زمان كفتح هدادي دوومي روا مي توني فتح بدي بجي لاحوله ولا قوته مي توني راف هم بدي نسب لا حول ولا قوتن و بیتونی رف اش بدی دومی رو لا حول ولا قوتن پس مرای توست در همچین مثال هایی که لا به اضافه نکره تکرار شده که اولی رو فتح بدی اگر اولی رو فتح دادی در دوومی سه چیز جاز میشه فتحه نسب و رف که فی نحوی مانند صفت در مثالی مانند لا رجلا ظريف اگر اسم لا مفرد بود منظور مضاف و شبه مضاف نبود و صفت مفردی داشت اون صفت هم سه اعراب میگیره الفتح والنسب والرفع الفتح مانند لا رجلا ظريفا نسب ماننده لا رجل غریفن، رفع ماننده لا رجل غریفن. پس زمانی که اسم لا مفرد بود، یعنی مضاف شبه مضاف نبود، و نعت مفردی داشت، و بین صفت و موصوف فاصله نبود، در همان صورت که لا چطور با نکره تکرار شده بود، ستا اعرابو ميغرفت این صفت هم سا اعرابو ميغرفت الفتح والنصب والرفع تا اینجا جمله تمام شد ورفعه این معتوف هست بفتح الاول یعنی چطور جائز بود که فتح رو اولی بدهی اختیاری بود ولکا في النحو لا حول ولا قوتا فتح الاول برای در مثالی مانند لا حول ولا قوتا لا به اضافه نکره تکرار شده اولی رو فتح دهی و رفعه و برای توسک اون رو رفع بدهی یعنی بگوی لا حولون در این حالت اگر اولی رو رفع دادی میتونی دومی رو فتح بدی به اضافه رفع اما دیگه نسب نمیتونی بشویدی. میتونی بگی لحو لون ولا قوته میتونی بگی لا حول ولا قوتون فیمتنع عن اما دیگه نسب ممتنع هست نمیتونی منصوبش گردانی و لم تتكرر لا اگر لا تکرار نشده بود اغر لا تكرار نشوده بود مانند لا حوله وقوته تقال لا در دومي تكرار نشوده بود لا حول ولا قوه انجا تكرار شده اما بگم لا حول وقوته اگر وان لم تتكرر لا اگر لا تكرار نشود او فصلت الصفه يا بین موصوف و صف اومده بود لا رجل و اینجا فاصله ای نیست اینجا فاصله ای نیست اما اگر اومده بود فاصله اومده بود لا رجل فداری لا لاجل فداری ظروفون بین رجل و ظریف فاصله اومده بود. اعلم لا. اگر لا تکرار نشده بود مانند لا حوله و قوته او فسیلتی صفتو یا صفت با فاصله اومده بود از موصوفش مانند لا رجل فداری غریفون او کانت غیر مفردتین یا غیر مفرد بود یعنی مضافش شبه مزافو بود ماننده لا رجل طالعن جبلن لا رجل طالعن جبلن اینجا شبه مضافه در این سهالت امتنع الفتح ما دومی رو نمیتوانیم فتحه بدیم یا منصوبش کنیم یا مرفوع اما دیگه فتح ممتنع میشه مثال برای تکرار لا. لا حول و قوة میتونیم بگیم یا لا حول و قوة حول دیگه نمیتونیم حرکتی دیگر دهیم قوتون رو میتونیم منصوب کنیم و میتونیم مرفوعش کنیم میتونیم بگیم لاحولا و قوتا میتونیم بگیم لاحولا و دیگه دیگر نمیتونیم بگیم لاحولا و قوتا همان طور که شعر دارد دا است، لا ابا و ابنان، لا و و ابن، نمیتونیم بگیم لا و ابنان و میتونیم بگیم لا و ابنون. پس اگر لا تکرار نشده بود، یا بین صفات و موضوع فاصله اومده بود یا اینکه صفات غیر مفرد بود، مضاف یا شبیه مضاف بود. در این حالت، دومی رو نمیته فتحه بدیم. اولی که باید فتح بگیرد، اما دومی رو نمی توانیم فتح بدیم. می تونیم کنیم و می تونیم فقط معرفش کنیم. مانند فلا آبا و ابنان مثل مروان و بنیهی می تونیم بگیم فلا آبا و ابنان فلا آبا و ابنان. می تونیم بگیم لا حولا و قوتن لا حولا و قوتن، اما نمی تونیم بگیم لا حولا و قوته. این شد از زمانی که لا تقرار نشده بود اما مثال برای زمانی که فاصله بیاد لا رجل فداری الدار ظریفون میتونیم بگیم و میتونیم بگیم لا رجل فداری و ظریفن لا رجل فی الدار ظریفون لا رجل فی ظریفن اما نه نمی بگیم لا رجل فداری ظریفه اما زمانی که غیر مفرد باشد یعنی مضاف و شبه مضاف اینجا هم میتونیم منصوبش کنیم میتونیم مرفوش کنیم میتونیم بگیم لا رجل طالعا میتونیم بگیم لا رجل طالعا جبلا صفتو اینجا منصوب و مرفوع میتونیم بکنیم اما نمیتونیم مبنی بر کنیم نمیتونیم بگیم لا رجل طالعا این شد از مختصری از بحث انده و اخواتش و تمام